شعار دولت اعتدال است اعتدال شعار بسیار خوبی است ما هم تأیید میکنیم اعتدال را اطراط محکوم است بد است سفارشی که من میکنم این است که مراقب باشید جریانهای مؤمن را با شعار اعتدال کنار نزنند بعضی این کار را دارن میکنن من میبینم تو صحنه سیاسی کشور با شعار اعتدال با شعار پرهیز از افراد سعی میکنند جریان مؤمن را که در خطرها اون جریان است که زودتر از همه سینه سپر می کند، اون جریان است که دولتها را در مشکلات واقعی به معنای حقیقی کلمه حمایت میکنه سعی می این جریان ها را کنار بزنند مراقب باشید اعتدال اسلام دیگه اسلام مظهر اعتدال است این اشد داو علی کفار رو حما بینکم اعتدال است قاتل الالدین من الکفار اعتداله. اعتدال است اعتدال ایناست دیگه امر به من روح نعیز از اعتدال است معنای اعتدال این نیست که از کارهای احساس وزیفهی که فرد مومن، جریان مؤمن مجموعه مؤمن انجام میده ما جلوگیری کنیم